می دونیم که کتاب مقدس و تمام کلام خدا الهام بخشه. اما برای این کار هر کدوم از بخشهای کلام خدا صدق نمی کنه. ما الان لاویان رو بررسی می کنیم که به مراتب کمتر از یک کتاب الهام بخشه. اون شامل راهنمایی‌هایی برای کاهنانی که چطور قربانی رو زب کنن. با این حال لاویان شامل برخی از زیباترین حقایق کتاب مقدسه. معلم ما این حقایق رو گنجینه موجود در کتاب مقدس خونده. امروز معلم ما بعضی از اون گنجینه ها رو با ما در میون میذاره. حالا بیاین همگی دل به کلام خدا بسپاریم. به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش آمدید. امروز در سفر روحانی خود باز هم سیدی در کتاب لاویان خواهیم داشت. منظور از این مطالعه بررسی کتاب مقدسه هر بار یک کتاب رو بررسی می کنیم تا بتونید یاد بگیرید، درک کنید و کلام خدا رو در زندگیتون به کار بگیرید. کتاب لاویان سومین کتاب از کتاب مقدسه. قبل از اینکه سعی کنیم مفاهیم این کتاب مشکل رو یاد بگیریم فکر کردیم که باید دورنمایی از خیمه پرستش یا پرستشگاه در بیابم رو داشته باشیم. پس با استفاده از دورنمایی از عهد قدیم و دورنمایی از عهد جدید در خیمه پرستش حالا آماده ایم که این کتاب کوچک لاویان رو بررسی کنیم. همونطور که چند هفته قبل اشاره کردیم وقتی مردم کتاب مقدس رو میخونند و به کتاب لاویان میرسن در درک اون با مشکل بزرگی مواجه میشن. اونا هم پیدایش و هم خروج رو سری می و بعد وقتی به لاویان میرسن رها میکنن. یکی از دلایلش که مردم نمیدونن کتاب لاویان یه دستورالعمل برای کاهنینیه که در خیمه پرستش خدمت می اگه شما کاهن عهد قدیم نباشید، شاید همه ی مطالب اون دستورالعمل رو درک نکنید. ایمان دارم که کل کتاب مقدس الهام بخش هست، اما همه ی بخش کتاب مقدس از نظر الهام بخشی یکی نیستن. در کتاب لاویان کتاب راهنمای کاهنین، راهنمایی هایی برای نحوه زپه حیوانات شده. با ام و اشیاء حیوون و با بقیه قسمت‌ها چیکار کنند این به بندازی مزمور 23 الهام بخش نیست و به اندازه اول قرنتیان 13 باب محبت عظیم کتاب مقدس الهام بخش نیست اما لطفا احساس نکنید که حقایق روحانی یا کاربردهای جدی در اون نیست که شما نتونید از مطالب لاویان استفاده کنید چون این حقیقت نداره این کتاب شامل حقایق زیبایی هست که دوست دارم اگه میشه به چندتا تا از گنجینه‌های این کتاب اشاره کنم اولاً برای اینکه به شما دیدی در مورد کتاب بدم میخوام مقدمه در مورد اون به شما بگم تا این کتاب راهنمای کاهنان رو درک کنید. این کتاب به چندین قسمت تقسیم شده. باب های یک تا هفت مربوط به مسئله قربانی هاست که کاهنین با اون سر و کار دارن. این هفت باب اول کتاب بر روی قربانی ها متمرکز است کتاب لاویان نه تنها به کاهنین به صورت عملی میگه که در موقع آماده کردن قربانی ها چیکار کنند؟ بلکه ما را راهنمایی میکنه و به ما بصیرت میده که مفهوم قربانی ها رو درک کنیم تمامی این قربانی ها انجام شد تا به وسیله اون قربانی عیسی که به عنوان بره خدا آمد و گناهان جهان رو برداشت درک بشه آیات بیشتری درباره عیسی مسیح در اون آموزش ها در هفت باب اول کتاب لاویان هست در باب 8 تا ده تمرکز بر روی خادمین یا بر روی خود کاهنین هست راهنمایی های مهمی درون بابها برای کاهنین وجود داره. این راهنمایی ها و شخصات فردی رو که قرار کاهن بشه و معیارهایی که باید اون کاهنین رعایت کنن نشون میده. به لحاظ کاربردی حقایق بسیاری در این باب ها برای شبانها، رهبران و کسانی که میخوان خدا از اونها استفاده کنه هست. در اون مایه کتاب در باب 11 تا دو هست. من به این قسمت از کتاب تقدیس شدگی میگم. خیممه پرستش و کاهنینی که در اونجا خدمت میکردن، این رو برای مردم دنیا میگه که کسانی که توسط خدا برگزیده شدند اشخاص مقدس بودند چون که خدای آنها قدوس بود تاکید باب 11 تا 22 بر روی اینه که این اشخاص برگزیده و ممتاز بودند اونها انتخاب شدند که متفاوت باشن. کلمه مقدس به معنای چیزیه که متعلق به خداست این افراد متعلق به خدا بودند کتاب مقدس میگه اونها فرزندان خدا بودند آیا تا حالا به فرزندانتون وقتی خونه رو ترک می گفتید که یادتون باشه که کی هستید و یادتون باشه که شما نماینده این خانواده هستید؟ با طرز رفتارتون به مردم نشون بدید که فرزند من هستید، این چیزیه که پدر آسمانی ما در کتاب لاویان توسط خیمه پرستش به تمام دنیا میگه در کتاب لاویان خدا میگه مقدس باشید، زیرا من قدوسم، شما به من تعلق دارید، پس به شایستگی اون رفتار کنید. تمام دنیا نشون میدید که به من تعلق دارید در این قسمت بابهای 11 تا 22 شما قوانین خاصی دارید که قوم خدا رو ممتاز میکنه قومی منحصر به فرد قوم برگزیده و قومی مقدس قوانین بازدارنده و قوانینی برای همه چیز وجود داره اما تمام این قوانین همه در یک کلمه خلاصه میشن که اون کلمه قدوسیت است جدا شده برای خدا کسانی که قدوسیت رو تجربه می کنند اونهایی هستند که به خدا تعلق دارند در بابای 23 تا 25 چیزی رو داریم که بهش خدمت میگیم روزهای مقدس زیادی در ایمان یهودی وجود داره شما اونها رو میتونید در 5 کتاب اول کتاب مقدس ببینید از اونجایی که این کاهنین کسانی بودند که در طی روزهای مقدس و این آینهای مقدس خدمت میکردند، میبایست تعلیم میدیدن تا آیین این ایام مقدس رو به جا بیارند کلیسای شما چطور در خدمات مشارکت میکنه؟ یک خادم جوان باید آموزش ببینه که به او یاد بدن چیکار کنه در اون روزهای مقدس مثل فسح هر تکی برای اونها مقدس بود مثل آیین عشای ربانی در کلیساهای امروزی از این رو شما در بابهای 23 تا 25 دستورالعمل هایی برای کاهنین برای به آوردن مقدس میبینید که باید در ایام مقدس انجام میشد وقتی به این بخش از لاویان میرسید همیشه از خودتون بپرسید به چه دلیل بود که خدا میخواست کاهنین به یاد بیارند که خدا چه روزی رو به عنوان روز مقدس مقرر کرده مثل فسح بعد این رو از خودتون بپرسید چرا خدا میخواست کاهنین این چیزها رو به یاد بیارن تمامی این روزهای مقدس به ما این واقعیت رو نشون میدن که خدا میخواست کاهنینش چیزی رو به یاد بیارن قوم خدا برای فراموش کردن مستعد بودند و خدا این رو میدونست و از این رو روزهای مقدس رو تعیین کرد که در اون آین های مقدس به جا آورده بشه که خدا از طریق اون میگفت هرگز فراموش نکنید تا اینکه فراموش نکنید این و این و این رو به یاد داشته باشید من به این قسمت خدمات میگم به دو بخش آخر کتاب لاویان تسلیم میگم کتاب لاویان، کتاب تسنیه و کتاب یوشه بسیار شبیه هم هستند این سه کتاب مثل نصیحت بزرگی به قوم خداست که از قوانین خدا اطاعت کنند و قومی مقدس باشند که به همین منظور فراخوانده شدند. اونها نجات یافتند و آزاد شدند تا مقدس باشند. نسایح پایان کتاب لاویان این باب آخر کتاب رو بسیار پرتحرک و پویا کرده. موسی گفت که لکنت زبان داره و نمیتونه به روانی صحبت کنه. به عنوان معلف تورات در پایان لاویان و در پایان تسنیه موسی به عنوان شخصی سخنور ظاهر شده. بخشی از موزه های فسیح به نام موسی ثبت شده. در کتاب تسنیه و در پایان لاویان موعظه های مهمی داریم که به قوم خدا نصیحت میکنه آنطور که شایسته است مانند قومی مقدس زندگی کنم. اینجا من مقدمه و دیباچه کتاب لاویان رو تموم میکنم و امیدوارم این اطلاعات به شما در مطالعه کتاب لاویان کمک کنه وقتی به این عناوین و بخش در کتاب لاویان نگاه میکنید میخوام که بعضی از برکات کاربردی اون حتی در کتابی مثل لاویان اشاره کنم برای مثال به بخش اول قربانی ها نگاه کنید در هفت باب اول کتاب حقایق زیبایی درباره راهنمایی تقدیم قربانی کاهنین برای خدا خواهید دید برای مثال وقتی یک گناهکار به خیمه پرستش نزدیک می شد و میخواست تا بخشیده بشه همونطور که قبلا در خیمه پرستش دیدیم کاهن رو نزدیک دروازه ملاقات می کرد کاهن در مورد معنای قربانیی که او میخواست بکنه راهنماییش می کرد بذارید توی کتاب لاویان به راهنمایی هایی که کاهن به گناهکار میده نگاهی بندازیم به گناهکار گفته می دستش رو روی سر حیوانی که برای قربانی آورده بذاره تاوانی که گناهکار باید می با مرگ حیوان تماماً پرداخت می شود. بی بیگناهی به جای گناهکار کشته می شود. کاهن باید حیوان رو در برابر خداوند قربانی می کرد. بعد کاهن می خون قربانی رو به حضور خداوند بیاره. می خون رو بر روی تمامی مزبه در ورودی خیمه می پاشید. چیزی که گفتیم به این صورت خلاصه میشه قربانی می بایست از دروازه خیمه وارد می میشد قبل از اینکه به مذبح برونزی برسه کاهن باید او راهنمایی می کرد تا مفهوم قربانی رو بفهمه علاوه بر دیگر مسئولیت ها کاهن معلم قوم خدا هم بود وقتی قوم خدا سوالی داشتند همیشه می از کاهن سوال کنند کاهن باید می نشست و اونا رو در مورد مسائل مربوط به کلام خدا آموزش میداد وقتی گناکار حیوان قربانی را تقدیم میکرد کاهن به او یاد می‌داد که دستش را رو بر روی سر حیوان بذاره. وقتی گناهکار دستش را رو بر روی سر او می‌گذاشد، او حیوان را به جای خودش معرفی می کرد و حیوان جایگزین او میشد. تمامی گناه گناهکار به طور سمبولیک به سر حیوان منتقل شد. مرگی که گناهکار به خاطر گناهش سزاوارش بود، بر حیوان بیگناه تحمیل میشد. الهیدانان کل این پر سر را کفاره جانشین مینامد در جدید، فولسر رسول مرگ مسیح رو به عنوان کفاره جانشین توصیف کرده. به دوم قرنتیان باب 5 آیه 26 نگاه کنید که میگه او کسی را که گناه را نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی پارسایی خدا شویم. یا به اول پتروس باب دو آیی 24 نگاه کنید اونجا که پتروس میگه او گناهان ما را در بدن خیش بردار حمل کرد تا برای گناهان بمیریم و برای پارسایی زیست کنیم. همان که به زخم هایش شفاه یافته اید. میتونید ببینید که رسولان به طور واضح چطور فکر میکردن. شنیدم که بعضی از مردم میگن کفاره جانشین کتاب مقدسی نیست. وقتی اینو میشنوم ناراحت میشم، چون کفاره قربانی قوییان کتاب مقدسیه. این آموزه در عهد قدیم در پیدایش شروع میشه، خصوصا در مراسم فسح. دوباره همون آموزه رو در خیمه پرستش در لاویان میبینید. این آموزه حقیقت زیربنایی عهد قدیم هست. و عهد جدید این حقیقت رو به عیسی نسبت میده. انبیا عهد قدیم هم این حقیقت رو به عیسی نسبت دادن. اونها میدانستند که مسیحا خواهد آمد و قربانی حیوانات را به کمال خواهد رساند. مثلا اشعیا نبی در کتاب اشعیا باب سه آیه شش گفته: جمعی ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یک از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمعی ما را بر وی یعنی عیسی مسیح نهاد." آیه سه شش آیه زیبایی این آیه با همون کلمه شروع میشه و با همون کلمه خاتمه پیدا میکنه کلمه جمیع. باید دو سوال در ارتباط با این آیه از خودتون بپرسید آیا ایمان دارید که جمی اول شامل حال شما هم میشه اونجا که میگه جمی ما مثل گوسفندان گم شده بودیم آیا تا کنون اقرار کردید که شامل من هم میشه من به راه خودم رفته بودم من مثل یک گوسفند گم شده بودم من گناهکارم، باور کنید که این بخش مهمی از اعتراف ایمان شما در انجیل عیسی مسیحه. آیه با کلمه جمعی تمام میشه و شما باید از خودتون بپرسید آیا این جمعی آخر آیه شامل حال من هم میشه؟ ببینید جمعی اول خبر بدیه، همه ما گناهکاری، این خبر بدیه. اما آیه با خبر خوش تمام میشه. خداوند یهوه گناهان جمعی ما را بر برای نهاد. آیا باور میکنید که جمعی آخر شامل حال شما هم میشه؟ اگر باور میکنید که جمعی اول در مورد شما صدق میکنه و جمعی آخر شامل حال شما میشه، شما نجات یافتید. این همون چیزیه که باید باور کنید تا نجات بیابید و همونطور که امروزه میگیم تولد تازه مسیحی بیابید. اینها واقعیات زیربنایی انجیل هستند و به صورت زیبا و تمثیلی در کتاب لاویان برای ما بیان شدن. شما در ارتباط با قربانی ها متوجه میشید که در تاریخ اسرائیل وقتی همه قوم گناه کردند، در اون زمان لازم بود که یک توبه جمعی انجام بشه. به کاهنین تعلیم داده شده بود که اگر تمامی قوم اسرائیل گناه کردند و کاری کردند که یهوه خدا اون کار رو ممنوع کرده بود، تمامی اون قوم مقصر بودند. وقتی میفهمیدند که چه کار کرده باید یک گاو نر جوان برای گناهانشون قربانی میکردند. گاو نر رو به نزدیکی خیمه می‌آوردند. جایی که رهبران قوم دستشون رو بر روی سر حیوان می و بعد اون رو در حضور خداوند می تصور کنید که رئیس جمهور ما معاونین او همگی می آمدند و دست روی حیوان می گذاشتن. بعد همون مقررات معمول برای دیگر قربانیان اجرا میشد بدین وسیله کاهنون گاو رو برای تمامی قوم کفاره قرار میداد و همه افراد قوم بخشیده میشدند این چیز فوق العاده ای بود که قوم یک پارچه برای تمامی گناهانش توبه میکرد این عملیه که در کتاب لاویان توصیه شده و همینطور در کتابچه راهنمای کاهنین نشون میده که خدا چطور قومش رو آموزش میده که از کاهن تبعیت کنن و مزد اونها رو تامین کنن از رهبران روحانی ما اصولی رو اینجا میبینیم که بر مبنای اون حقوق شبانان و شماسها پرداخت میشه خدا گفته من ترتیبی دادم که سینه و ران هدایا برای پسران هارون در نظر گرفته بشه هارون و پسرانش باید این قسمت قربانی‌ها رو دریافت می‌کردند این سهم اونها بود این باید از قسمت‌های هدایای سوختنی جدا می‌شد و به خادمین خدا یا همون کاهنین به هارون و پسرانش داده می‌شد در اوایل کتاب مقدس خدا اساس پرداخت چیزی رو که امروزه به آن مزد روحانی می‌گیم تعیین کرده در بخش خادمین یکی از مهمترین لغات مس شده هست. این کاهنین مردانی مس شده بودند خادمین روح القدس نیز به این ترتیب شرط داده شدن. روح القدس کار موجزه آسای زیبایی در ما انجام میده. حرف اضافه در بیشتر در ارتباط با خادمین روح القدس به کار رفته. اما روح القدس در کتاب اعمال کار قدرتمندی بر ما انجام میده. به کتاب اعمال توجه کنید حروف اضافه بر هست. فیض عظیم بر همه آنها بود. بعد از اینکه روح قدوس بر شما قرار میگیره شما قدرت زیادی پیدا می کنید این مسح روح القدس بر ما هست که همیشه با خدمت اجین هست شما نمی خدمت بکنید مگر اینکه روح القدس بر شما بیاد. نشانه اینکه که روح القدس در شما کار می کنه میوه های روح است. میوه مثل محبت، شادی، آرامش، صبوری، مهربانی، نیکویی، صداقت، ملایمت و تسلط بر خود هست میوه های روح القدس نهتا هستند اما نشانه این که روح القدس کاری بر شما انجام میده، عطایای روح خوانده شده. در عهد جدید حدودا به 21 عتی اشاره شده. روح القدس همچنین کاری در بین ما انجام میده. کتاب مقدس میگه هر جا دو یا سه ایماندار جمع میشن، روح القدس اونجا حضور داره. این حروف اضافه تفاوت عرصه های کار روح القدس رو نشون میدن. کاهن اعظم حتی در عهد قدیم نیز با مس با میشد که روح القدس بر افراد بیاد. این موضوعی مختص به عهد جدید نیست این مربوط به عهد قدیم و جدید هست. کاهنین مردان مسح شده بودند به عنوان نشانه مسح خون قربانی بر گوشها، دستها و شست پای راست کاهنین مالیده می شد که حرکت نمادین زیبایی بود این به کاهن می گفت که تو مرد مقدسی هستی تو باید مردم را هدایت کنی تا مقدس باشند تو نمیتونی شخصی عادی باشی تو فراخنده شدی تا مس شده باشی هر چیزی که شما میشنوید باید با روح القدس محص بشه. آیا این امروزه باعث نمیشه گیج بشیم؟ امروز چرندیات زیادی هست که ما میشنویم. یک شخص مقدس نباید چیزی رو که مس روح القدس بر اون نیست بشنوه. این چالش بزرگیه. در اون ایام اونها به اندازه امروز ما مطلب نمیخوندند. به ندرت افراد باسواد بودن و تاکید بر روی شنیدن بود. اما هر چیزی که میشنیدند باید مس شده می بود. کلام خدا و هر چیز دیگری دست ها بیانگر اعمال هستند هر کاری که دست ها انجام میدن باید شده می بود و پاها بیانگر رفتن بودند هر جایی که پا میرفت باید توسط خدا مقدس می شود. این حرکت نمادی زیبایی بود در کتاب لاویان شما همینطور تمثیل زیبایی رو می بینید که منظور ما رو از این روشن میکنه که وقتی میگیم موسا وقتی کتاب شریعت رو نوشت از عیسی نوشت درعهد جدید وقتی عیسی یک جزامی رو شفا میداد او همیشه به جزامی شفا یافته می گفت برو خودت رو به کاهن نشون بده. چرا او این کار می کرد؟ چون در کتاب لاویان شما اون آموزه رو می بینید. جزام مشکل وحشتناک اونها بود. بیشتر انواع جزام مصری بودند، پس جزامی ها قرانتینه می شدن. زندگی یک جزامی واقعا دردناک بود. اما فرض کنید که یک جزامی شفا می یافت سراحت هم بگیم که در عهد قدیم این اتفاق به ندرت میافتاد اما امکان پذیر بود. برای نومان جزامی اتفاق افتاد. میتونست پیش بیاد. خدا همیشه می تونه شفا بده و در عهد قدیم شفا میداد و البته توسط عیسی شفا میداد. خدا توسط موسی امکان شفای جزامی رو فراهم می کرد تا زمانی که جزامی شفا می یافت اگر کسی نزدیک فرد جزامی می شد او می فریاد میزد نجس، نجس، و مردم از او فرار میکرد تنهایی یک جزامی و زندگی دردناکی که او داشت تصور کنید اما فرض کنید که جزامی شفا می یافت او نباید به خانه برمیگشت و به زندگی معمولی و فعالیتهای اجتماعی و رته آمده با مردم می پردا مگر اینکه خودش رو به کاهن نشون میداد در کتاب لاویان در باب چهارده شرحی از آیینی هست که مراسم تطهیر شفای یافته رو توسط کاهن نشون میده که بعد از اون کاهن شخص شفای یافته رو پا کلام بعد از اون جزامی میتونه برگرده و با مردم معاشرت کنه. برای این مراسم باید ظرفی سفالی چوب قرمز و عرض و زوفا و دو گنجش فراهم میشد. وقتی که کاهن تشخیص میداد که جزامی پاک شده، دستور میداد که دو گنجش گرفته بشه. گنجش که اول بالای یک ظرف سفالی پر از آب که باید از آب جاری برداشته میشد، قربانی میشد. وقتی گنجش که اول قربانی میشد، خونش به داخل آب میریخت بعد او گنجشک رو درون ظرف سفالی پر از آب قرار میداد و بعد گنجشک دوم رو با یک تکه چوب ارز و قرمز میگرفت، او باید گنجشک رو به اون چوب ها میپست و در آب خونالود ظرف سفالی فرو میبرد. او بعداً باید یک شاخه چوب زوفا میگرفت و اون رو در آب خونآلود فرو میبرد و هفت مرتبه بر جزامی میپاشید. ممکنه برای شما چندشاور باشه. من فکر میکنم خداوند نمادهای زیبایی در این تشریفات به ما میده. بعد از این که کاهن دومین گنجش رو که با رشته قرمز به چوب قرمز بسته شده بود داخل آب خون آلود فرو می کرد او باید دومین گنجشک رو رها می کرد و اجازه میداد تا آزاد بشه فکر میکنید این نماد چه چیزی میتونه باشه آشکاره که این آیین یکی از زیباترین تمثیلهای های انجیل ایسای مسیح در کتاب لاویان هست قبل از هر چیز کاربرد های زیادی هست که در مورد جزامی ها به کار گرفته شده آب نشانه ای از این واقعیت که جزامی از جزام خود پاک شده. چوب عرض که نمیپوسه حکایت از این داره که کاهن ایمان داره که بدن او دوباره مبتلا به جزام نخواهد شد. وقتی که به گنجش که دوم اجازه میدن آزادانه پرواز کنه، این نشانه ای از آزادی شخص جزامی از زندگی قرانتینه ای او هست. به علاوه این کاربورت ها، برای جزامی اینجا اینجا های واضحی برای انجیل عیسی مسیح میبینید ظرف سفالی صحبت از تجسم عیسی میکنه خدا انسان شد خدا جسم بر خودش گرفت یک کاسه سفالی و به این جهان آمد تا بر صلیب به خاطر گناهان ما بمیره گنجشکی که در اون ظرف سفالی قربانی میشه جسم پوشیدن و مسلوب شدن عیسی رو به زیبایی به تصویر میکشه بعد گنجشک دوم که بارشته قرمز به چوب قرمز بسته شده و در آب خونالوت فرو میره و بعد بهش اجازه میدن که آزادانه پرواز کنه تصویر زیبایی از قیام عیسی مسیحه بر مبنای عهد جدید دو واقعیت کتاب مقدسی وجود داره که عبارتند از مرگ و قیام عیسی مسیح مرگ عیسی مسیح نیمی از انجیل و نیمه دیگر اون قیام هست مرگ عیسی مسیح به ما میگه که چطور میتونیم بخشیده بشیم و قیام عیسی مسیح به ما میگه که چطور میتونیم با مسیح برخواسته و قیام کرده رابطه داشته باشی این دو واقعیت کتاب مقدسی در آیین پاکسازی فرد جزامی در لاویان باب 14 به زیبایی برای ما به تصویر کشیده شده در بابهای نهایی کتاب لاویان موعظه مهمی از موسی میبینیم که واقعا موعظه مهمیه شما میتونید این رو در آخر کتاب تسنیه هم ببینید کتاب مقدس میگه اگر در فرایز من سلوک نمایید و اوامر مرا نگاه داشته آنها را به آورید انگاه بارانهای شما را در موسم آنها خواهم داد و زمین محصول خود را خواهد آورد و درختان صحرا میوه خود را خواهد داد و کوفتن خرمن شما تا چیدن انگور خواهد رسید و چیدن انگور تا کاشتن تخم خواهد رسید و نان خود را به سیری خورده در زمین خود و امنیت سکونت خواهید کرد و به زمین سلامتی خواهم داد و خواهید خوابید و ترساننده‌ای نخواهد بود و حیوانات موزی را از زمین نابود خواهم ساخت و شمشیر از زمین شما گذر نخواهد کرد و دشمنان خود را تعاقب خواهید کرد و ایشان پیش روی شما از شمشیر خواهند افتاد و پنج نفر از شما صد را تعاقب خواهند کرد و صد از شما ده هزار را خواهند راند و دشمنان شما پیش روی شما از شمشیر خواهند افتاد و به شما الاتفاد خواهند کرد شما را بارور گردانیده شما را کسیر خواهم ساخت و عهد خود را با شما استوار خواهم نمود و قله کهنه پارینه را خواهید خورد و کهنه را برای نو بیرون خواهید آورد و مسکن خود را در میان شما برپا خواهم کرد و جانم شما را مکروه نخواهد داشت و در میان شما خواهم خرامید و خدای شما خواهم بود و شما قوم من خواهید بود لاویان باب 26 این نمونه ای از موعظه موسی هست که به اطاعت تشویق میکنه برکت رو شرح میده که به دنبال مطیعان خواهد بود بعد این موعظه ترسناک موسی را دارید که میگه و اگر مرا نشنوید و جمعی این عوامر را به جان نیاورید و اگر فرایض مرا رد نمایید و دل شما احکام مرا مکروه دارد تا تمامی عوامر مرا به جان نیاورده عهد مرا بشکنید من این را به شما خواهم کرد که خوف و سل و تب را که چشمان را فنا سازد و جان را تلف کند بر شما مسلط خواهم ساخت و تخم خود را بیفایده خواهید کاشت و دشمنان شما آن را خواهند خود و روی خود را به ضد شما خواهم داشت و پیش روی دشمنان خود منحظم خواهید شد و آنانی که از شما نفرت دارند بر شما حکمرانی خواهند کرد و بدون تعاقب کننده ای فرار خواهید نمود ببینید نبوت با تشویخ همراه شده چون که خدا قبلا اون چیزی را که عملا برای اونها پیش میامد پیشگویی کرده همینطور طور که در کتاب‌های تاریخ عهد قدیم پیش میریم خواهیم دید که وقتی اونها از کلام خدا اطاعت کردند خدا اونها را برکت داد و وقتی از کلام خدا اطاعت نمی‌کردند برکت خدا رو نداشتند وقتی از خدا اطاعت می‌کردند به طور موجزاسایی بر دشمنانشان پیروز می‌شدند وقتی اونها وارد سرزمین کنعان شدند همونطور که در کتاب لاویان گفته هزاران نفر رو فراری دادند اما وقتی از کلام خدا اطاعت نمی‌کردند خودشان برگشتند و متواری شدند و بالاخره به اسارت رفتن. همونطور که در کتاب لاویان میبینید، شما انواع قوانین رو میبینید که بر مقدس بودن اونها تاکید میکنه. بعضی از این قوانین مربوط به قضاهاست. امروزه هرچه بیشتر در آداب تغذیه آگاهی پیدا میکنید، بیشتر قدر این قوانین رو میدونید. دکتری به نام مکمیلان کتاب زیبایی داره به نام هیچ کدام از این بیماریها». دکتر مکمیلان اشاره میکنه که اگر به موسی الهام نمیشد، باید بگیم هزاران سال پیش او یک متخصص علوم پزشکی بوده. موسی از مسائل مربوط به ضدعفونی اطلاع داشته و از اهمیت خطر تماس با بیماران یا مردگان بدون ضدعفونی مثل یک جراح اطلاع داشته. شرح های بسیار زیادی درباره دیدگاه های موسی در کتاب دکتر مکمیلان آمده و در کتاب خروج موسی به قوم خدا قول داد که اگر این قوانین را مراعات کنند به هیچ کدام از این بیماری ها مبتلا نخواهند شد. همینطور در کتاب لاویان متوجه میشید که چیزهای خاصی ممنوع شده. مثل همجنسگرایی. همجنسگرایی همواره در کتاب مقدس مند شده. به نظر من همجنسگرایی به خاطر عواقب اصفبار اون ممنوع شده. زندگی همجنسگراها آنچنان که وانمود میکنن زندگی شادی نیست. همجنسگرایی در نقشه خدا جایی نداره. نقشه خدا اینه که دو نفر با هم متحد بشن تا انسان‌های جدید به وجود بیارن و والدین اونها باشن. دو نفر همجنسگرا میتونن نیازهای هم رو برطرف کنن اما نمیتونن خانواده‌ای تشکیل بدن. موسی خیلی رک و صریح به شدت همجنسگرایی رو محکوم میکنه. در کتاب لاویان موسا جادوگری، فالگیری و پیشبینی آینده رو هم محکوم میکنه. قوانین موسی بسیار سخت هستند چون که قوم یهود باید مقدس می بودن. قدوسیت زیر ساخت کتاب لاویان هست. امیدوارم که این مقدمه و دیباچه کتاب لاویان برای شما این امکان رو فراهم کرده باشه که شخصا کتاب لاویان رو بخونید و از اون برکت فراوانی بگیرید. یادتون باشه که کتاب لاویان کتابیه که به عنوان دستورالعمل العمل کاهنینه که به اونها نشون میده چطور مز شده تا مردان مقدسی برای خدا باشن و بتونن به قوم خدا تعلیم بدن که چگونه مقدس باشد خداوند میگوید مقدس باشید زیرا من قدوسم این پیغام کتاب لاویان برای من و شماست عزیزان وقتی کتاب لاویان رو میخونین از خودتون بپرسین اون چی میگه معنای اون چیه اما مهمتر از همه بپرسین معنی اون برای من چیه یا به عبارت دیگه چطور من میتونم اون حقایق رو در زندگیم بپذیرم. همونطور که امروز معلممون گفت، کتاب لاویان درباره قدوسیته، جدا شدن برای پرستش و خدمت به خداوند. خدا هنوز هم در ایام ما ما رو دعوت میکنه که برای خداوند و پادشاه ابدیمون مقدس باشیم. تنها خدایی که به ما شادی، دلگرمی ازد و جلال عبدی میده آمین